بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب الخروج إلى الضيعة حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج وعليه خميصة له بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سدو السبومين باب أز أبواب صحيح أدم مفراد قفتي ما أبو رحمه الله وسكن فسيح جناته باب الخروج إلى الضيعه رفتان بترف باغي مزرعي بستاني حدیث 75 حدیث ابو سالم رضی الله عنه که میگه اومدم نزد ابو سعید خضری و کان لی صدیقا هم بودیم با هم دیگه دوست بودیم میگه اومدم نزد ابو سعید خضری و با هم دیگه دوست بودیم رفیق بودیم فقلت الا تخرج بنا الى النخل نمیریم با هم دیگه بریم به نخلستان میگه فخرج و عليه خمیسه له میگه اومد که با هم بریم به بستان و باغ به اون نخلستان و جایی که برتنم داشت اون 4 قد و اون خمیسه حالا گلی مانند و حالت اون چادرهایی که رمنا رودش دوش میندازن میگه اومد و اینچنین پوشیشی رو داشت با همدیگه رفتیم به باغش خب الان اینجا چی میخواد به رسول بخاری با این باب چیه با این باب با همدیگه دارن میرن تفریح هوای عوض بکنن صدقه هست پاداشی داره چیه چی میخواد به رسول امان بخاری رحمه الله بله شما در این حالا اون حدیث که ما قبل داشتیم، حدیث که ما بعدم خواهد اومد سلمان فارسی برای خودش باقی داشت، مزرعه داشت، سبزیجات میکاشد. ابو سعید خودری برای خودش هم باقی داره. ابن مسعودم میاد برای خودش باقی داره. وقتی که بالای نخلش میره، برای که خور ما بکنه برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینا باغبان بودن یا کشاورز بودن، بعضی آشنون دامدار بودن، رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش چوپان بود، چپانی میکرد. اینها شغله. انسان از کسب به خودش بخوره و در بیاره برای زن و بچهش عیب نیست، عار نیست. شاید این یک وجهی باشه برای ذکر این حدیث در این باب از طرف امام بخاری رحمه الله. فقط یک قسمت رو بگم ادامهش در صحیح مسلم اومده که ابو سعید خدری وقتی که با ابو سلمه با هم دیگه میرم به طرف نخلستان اون مسئلهی که سبب شده اینا با هم دیگه برم بیرون بحث مذاکره هست، تو مسیر راه میگه داشتیم میرفتیم خود ابو سلمه میگه که راوی حدیثه که داره از ابو سعید خدری نقل میکنه میگه رفتیم با هم بعد سوال پرسیدم سوال پرسیدم گفتم که اون شبی که شب قدر بود یادته با هم دیگه اتکاف بودیم چسی بودیم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدان گفتن که یادم بود چه شبی شب قدر فراموش کردم احساس میکنم در گلی دارم سجده میکنم الی آخر بعد میگه که کاری که از اون شبها دیدیم که ابر میاد و بعد که نماز تهجدمون تموم شد دیدیم صبح داریم سجده میکنیم تو اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله واسط کرده بودند توی روی گلی بحث هم اینه بیشتر اینکه سبب ورود حدیث هم کمک به ما میکنه تو خیلی از چیزها بحث سغلال وقت بحث اینکه تفریحمون مجرد هوا عوض کردن نباشه بلکه مذاکره علمی باشه بلکه هدفمون حتی در و گشت و گذارمون علم باشه مذاکره علم باشه انسان وقتش غنیمت براش از دستش نده برای طلب علمش برای مذاکرهش، اش امروزه که ادوات طلب علم زیادن، بله قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيره عن ام موسا قالت سمعت عليا رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد أما حديث سدو أفتد الشيش حديث علي رضي الله عنه ياتي که امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن مسعود ان يصعد شجره فياتيه منها شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم که کہ وليد درختی بر از نخل و براش خوشه‌ای از خرما بکنه یا خرمایی بکنه براش بچینه فنظر اصحابو الى ساق عبد الله بن مسعود بنخرخوات ازارتو لونگتو والا بکشی تا بتونی بری والا ساق پای عبدالله بن مسعود رو دیدن که خیلی باری که فضحكو من حموشت ساکه تعجب کردن و یه لب زدن خاندی زدن گفتن چقدر <تصفيق> ساقش بوریه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم روبرو صحابش میکنه ما تضحکو چی میخندید لرجل عبدالله بعدی که در حدیث در سندی دیدید دی که دی دی دی صحابی گفته میشه عبدالله دیگه عبدالله بن مسعوده عبدالله بن عمر نیست عبدالله بن عباس نیست عبدالله بن عمر و بن عاص نیست الله عبدالله بن مسعوده. این عبداللهی که در رواهات از حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عبدالله گفته میشه شهن عبدالله بن مسعود لرجلو عبدالله پاهای این ساق پای باریکی که میبینید ساق پای عبدالله بن مسعود سنگین‌تره در ترازوها من احد از کوه احد ترازو اعمالش حسناتش این حدیث دلیل بر چیه در این که روز قیامت انسان خودش هم وز داره و وز میشه در ترازوی اعمال غیر از پرونده اعمالش غیر از خود اعمالش عشان که متکلمین و اینا انکار میکنند میگن که چطور عمل وزن میشه؟ الله قادره بر اینکه عمل را شکلی بده که اونجا وزن بشه. الله قادره بر هر کاری. و این حدیث بر اینه که خود شخصان وزن میشه چنانچه در حدیث دیگر داریم که یوتب الرجل سمین فلا يزن عند الله جناح بعوض در ثروتی اعمال وقتی که میارن شخصی بزرگ چاق ولی اندازه بال پشی هم وزن نداره در روز قیامت چرا؟ پر از گناه، پر از بدیه است. اما عبدالله بن مسعود نه، با اون باریکی پاش از کوه خودم تره در ترازی اعمالش. این فضیلت اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلام به این درجه همینطوری نرسیدن. یک از راهایی که به این فضیلت و منزلت رسیدن، خوردن از کسب دستشونه. نه. چنانچه این حدیث رو میاره امام بخاری، از تلاش و زحمت خودشون میخوردن باقوان بودن، کشاورز بودن، زحمت میکشیدن، تلاش می‌کردن. بعدی. قال المؤلف رحمه الله باب المسلم و مرأت و حدثنا أصب قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد قال أخبرني خالد ابن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله ابن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن و مرأت و أخي إذا رأى فيه عيبا أصلحه سد باب از ابوبسحیه دامفراد كفتي من بخاري رحمه الله باب المسلم مرآة أخي مسلمان آيني بردرشة يعني شي حديث السادة أفتادها في حديثة بحرير رضي الله عنه وغفر الله له وله ولأمه رضي الله عنك مجياد المؤمن مرآة أخي لحاس الحديث مرفوع هذا الحديث أزرسول الله صلى الله عليه وسلم كمؤمن آيني بردرشة إذا رأى فيه عيبا أصلحه شما نظر نظار بقريت قوة جلوب آيني بعد أي بروت سرات تومي پات اون را اصلاح میکنید مؤمن برای برادرش آینه است ایبشو کوتاهیش رو بهش گوشزد میکنه تذکر میده نصیحتش میکنه توی پرانتز ما علی رجب کتابی جالبی داره فرق بین نصیحت و فضیحت نصیحت و فضیحت نصیحت نصح خیرخواهیه و فضیحت رسوایی خیرخواهی و رسوایی من اینجا بیام توی جمع یکی رو کسی رو بگیرم بگم تو اینطوریه تو نماز صبح نمیامدی و تو اون کارو کردی این کارو کردی این فضیحته این رسواییه دارم رو میبرم این درست نیست این آینه نیست آینه وقتی برای برادرتی که گوشه دستش رو میگیری برادر نمازت فوت شد نماز صبح نبودی شاید مریض بودی شاید نتونستی کاری از من برادر, برادر بیاد این دلسوزیه این خیرخواهیه لازم نیست که اونجا همون لحظه درجا بی دستش بگیری ها دیشب مشغول بودی نه تا دوازه شب تا یک شب مشغول بودی این نصیحت نیست این تعییره این تنقیصه فصیحت نیست درسته رسواش نکردی جوی نرفتی این در اون در بگی ولی اینجا داری چیکار میکنی؟ داری تحقیق روش می‌کنی با اون تعییر با اون زش جلوه دادنش بد جلوه دادنش و قل عباد قول التي هي احسن بندگان من بگو بهترین ها رو بگن و بهترین وجه نگفت حسن حسن خوبه ولی گفت خوب ترین رو با هم دیگه چرا ان شیطان انزغه بینهم شیطان نزغات داره بینتون اختلاف میندازه یوسف علیه السلام چی گفت وقتی که برادراش اومدن اقرار کردن به اشتباهاتشون چی گفت گفت که نه شیطان بود که میان من و شما اختلاف بعد بعدا نزغات شیطانو بینی و بین اخوتیم همه این مسئله که پیش اومده به خاطر نزغات شیطان بوده میان من و شما نهایت گذشت عفو و نهایت حسن اخلاقه، حسن رفتاره، حسن تعامله دیدید مثلا در مسجدی امام مسجد یک شب مثلا بالفرض نیست من خودم دیدم زور که میاد اون مسجد دیگه اون معمومین مسجد از این طرف یک اش گرفتن اون از این طرف ها خیلی کار داشتی دشب خب این چیه این نصیحت به نظر شما این فضیحته این رسواییه این نصیحت نیست انسان باید بدونه تو برادر مؤمن خودتی دین رو دیگه به شوخی نگیر به مطلق نگیر لا از قوم من قوم مسخره نکن بریش کسی نخرد خیلی چیزا هست خودمون عادی میشری ولی گناه محسییته چون درش تحقیر هست چون درش درا و کوچک شمردن کسیه حق نداری کسی رو کوچک بکنی تحقیرش بکنی هدفت از اون نصحت اصلاح باد باشه. نیتت مهمه در اون اصلاحت باید مثل آینه صاف باشی مثل آینه روشن باشی اینها نصیحتته. مؤمن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اینجا هر از گفته ابو هریره ولی خب از مرفوعش هم داریم حدیث بعدیش که میاد از گفته خود رسول الله صلی الله علیه و سلم، مؤمن باید واضح باشه شفاف باشه حرفش رو درست برسونه با ادب با احترام با تقدیر یک پرانتز اینجا باز میشه در شرح این حدیث بعض از علما بازش کردن یک معنای دیگر یک معنا اینه که در نصیحت تو شفاف باشی صاف درسته یک معنای دیگر این که تو خودت صاف باشی که مردم ازت پند بپذیرن تا مردم خودشون اصلاح بکنن تو خیرقاه دیگران باش تو به دیگران خوبی کن تو آینه باش برای مردم تا مردم از تو یاد بگیرن تا مردم از تو یاد بگیرن چنانچه ما تشویق شدیم در, در شرح به تهجد حالا این مسائل کلن در شرح کتاب قیام اللیل امام اجری گفتم من اونجا توصیه میکنم کنم وقت کردید یک مروری داشته باشید مثلا از احادیث و روایت هایی که ما داریم شخصی که تهجد میخونه فرشته میاد وقتی انسان مسواک میزنه دهن شروعی دهن اون شخص نمازگذار میذاره تا اون قرآنی که از دهن اوممه خارج میشه وارد تن و جان اون فرشته بشه از اون برکت قرآن برخوردار بشه از برکت نفس مؤمن با اون قرآنش. در اون روز اون مؤمن دیگه تنبل و بی حوصله نمیشه صورتش نورانی میشه اینا احادیث فضیلت هست فضیلتای حسی نه معنوی معنویش که اجرای اخرویش که زیاده خب اینجا وقتی که چهره تو نورانی شد خوش برخورد و خوشرو شدی به خاطر اون نماز شبت چی بشی تو میشه آینه شفاف آینه روشن با اون لبخندت با اون خوشرویی با اون اخلاق خوبت اون ها هست به خاطر همین در شرح این حدیث رو میارم بعضی از علما میگن که اولیاء الله همو الذين یذکر الله لرؤیتهم اولیاء الله کسنیان که که اگر ببینی بیاد الله بیفتی از خوبیشون از خیرخوایشون از خوشرویشون از اون آثار و سیما و اون نمای عبادت که در صورت چهرهشون می‌بینی واضحه از اون چهره‌هاشون که اهل ایمانن مثل آینه ودار الربايات دي قال البني تاسي ميكونها أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أولياء الله كسان يعني كواختي كونها رمي بيني بياض الله ميوفتي الله رياض ميكوني إن وجه الديكاريز شرح الحديث كبعض الألماة يات كذا بله حديث, بل حديث بعدي قال المؤلف رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبيه ريت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ومرأت أخيه والمؤمن وأخ المؤمن يكف عليه ضيعة ويحوطه من وراه سألا أفترضه هشتمين حديث حديث أبو ربي رضي الله عنه وغفر الله له والأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أزل الصلاة على سلامة مفارميا المؤمن ومرأت أخيه مسحديس قبلي مؤمن قايني برادار خودش یک مسئله واقعاً که چقدر شما آینه در جامعه دارید اهل تهجد اهل دین همسایه دار غذا بپزه به خاطر که به همسایه‌هاش بده بره به زیارت همسایگانش بره به زیارت مریضات تک تک سر بزنه ارهامش و تمامیش نگاهشون داره و بره تک تک سله رحمش رو به چقدر از اون کسا داره که واقعاً آینه اندر جامعه صافن پاکن نیست دل بکنیم نه الله لا سعد يغفر الله لنا ولكم. واقعاً میذریه واقعا میتونه آدم خودش از حال روز خودش میدونه این نیاز به اقرار به درگاه الهی داره خودمون رسوا نکنیم ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین اقرار به گناهه باید بکنیم نه قصور کوتاییه به درگاه الهی واقعا دارم میگم از دست خودمون باید الله شکرت بکنیم خودمون مقصری به درگاه الهی کوتاهی داریم اگر از ما نبخشه ما رو وای بر ما و المؤمن اخو المؤمن مؤمن برادر مؤمن دیگه هست برادرشه دستش میگیره یاریش میده کمکش میکنه دعوتش میده چقدر دیدیم که اشخاص بیان دست همدیگه رو به خاطر دین میگیرن برادر وقت نمازه بریم نماز چقدر میشه از این حالتا پیش بیاد طرف طرف را بکشه به نماز به خاطر اینکه نمازشت فوت نشه یا نماز صبح بیدارش بکنه دوست رفیق از وقت خودش بزنه گه بزار اون فلانی مسجد نمیده امروز من بیدارش کنم. خب اینا کوتاهی ها هست اینها ضعف در اقت برادری هست که بین من و شما ها هست احساس مسئولیت نداریم در مقابل برادران خودمون برای عبادتمون برای طاعتمون نمازه وقتی که تو نماز سوسی به خرج زدیم دست هم دیگر رو نگرفتیم که حق و حقوق الهیه و اولین چیزی که روز قیامت حساب میشیم از باب اولاد دیگر امور رها میشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتخلف عنها إلا منافق كسي ازش فوت مش جزء منافق يعني الآن جامعة براس منافقه بخودت بقو شقد منافق هست مقصر كيه قصر من و تو دستشون نجرفتين كماك شون نكردين از ان نفاق دار بيان الله رحب حال انها بكنا بحال ما كانوا لا يتنهون عن منكر لبعث ما كانوا يفعلوا مهم شريك جرميم چون شن دستشون نجرفتين یکوفو علیه ضیعته یکوفو علیه ضیعته ضیعه ضيعت امرار معاشه تجارته زراعته یکوفو علیه ضیعته نمیذاره که باغش بستانش مزرعهش خراب بشه ضرری ببینین نه در تجارتش نه در باغ و مزرعهش هر چیزی که سبب ضرر و خسران اون صاحب مال بشه این معمولا هنگام بارندگی پیش میاد برای باغبانا بیشتر شخص مهم نیست که باغ فلانی بعد از باغ این آب بهش برسه یا نه مسیر آب عوض میکنه که کل آب بیا تو باغ خودش اون بقیه حال آب بهشون رسید نه رسید به من چه مهم باغ خودمه که به کوه نزدیکتره به این مسیر آب نزدیکتره این برادری نیست این خووت نیست این اسلام نیست تو داری مال اون برادرت مال اون مؤمن را ضایع میکنی با این کارت یکوف علیه ضیعته داساس این بکاش داساس خسارت وارد کردن به برادرت جایم است هست تاجره جنس طرف خریده گران بعد این حالا با ارز پایین میره بالا میاد از عمد الان فرصت غریمت میشوره برای این که ضربه بزنه برای اینکه ضربه بزنه به اون تاجر دیگری یا با قیمت پایین میده و گاهی هم اگرم بلفرس نوسان ارز نباشه از عمد زیر قیمت میفروشه میگه با خاطر اون ورشکست بشه ما این بنتجار است مافیا بازی است خصوصا در بازارهای کلان اینا هم همه علت چیه عدم اخوت عدم دلسوزی به هم دیگر و یحوطه من ورائه احاطه کردن و یحوت در بر حفظ برادر در غیبتش در نهانش در پنهانش کور رو حفظ بکنی غیبتش شد تهمتی بهش زدن دروغی بهش گفتن حقی از حقوقش پایمال شد بر علیش حرفی زدن ازش دفاع بکنی چنانچه در حدیث دیگه داریم نزد ترمزی مثلا صحیح من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامه الله اكبر چه پاداشی مؤمن اینه در اون نهان و پنهان از برادرش دفاع بکنه دفاع کرد چه پاداشی داره الله در روز قیامت چهره را میچرخونه از آتش جهنم و جهنم را برش حرام میکنه رد الله عن وجه النار يوم القيامه الله چهره را از آتش دور میکنه من رد عن عرض اخي برادرتا زلبش کردن ناروابش بستن تو ازش دفاع کردی حق دفاع چیه؟ اجر پاداشت در دفاع چیه؟ الله چهرت رو از جهنم دور بکنه در روز قیامت این پاداش در مقابل اخوته. حق اخووت و برادری را ادا کردن بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا احمد بن عاصم قال حدثني حیوه قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاس بن ربيع عن المستورد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حديث حدیث مستورد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ أُكْلَةً أُكْلَ لُقْمَي مَنْ أَكَلَ بِمُسْلِمٍ با سر مسلماني تو اللقمي بدست بياري با دروغ بسن بشبري دشمنش تا اینکه جیره خارش بشی، پولی بهت بده، باجی ازش بگیری، لقمه حرامه. فَإِنَّ الله يُطْعِمُهُمْ مثلها فی جهنم، سزاش، لیاقتش، لقمه ای از لقمه های جهنمه. لقمه های جهنم چیه؟ سقومه؟ سقم چیه؟ اون خاری که شخص وقتی که میخوره دل روده و جگرش آب میشه، تیکه تیکه و پاره پاره میشه، دوباره زنده میشه، دوباره همون کار رو انجام میده. چی مینوشی اونجا؟ چه آبیست؟ همین، همین چیه؟ آب جوشانی که جلوش که میارن صورتش با اون پخته میشه، بخارپز میشه غیر از اون خوردنش و جوشان بودنش غیر از اون چرک های جهنمیان که به خوردش میدن چرک های اون جسد افونی شده ی جهنمیان با اون سوختن و پخته شدن خاطر چی؟ بخاطر اینکه حق مسلمان تو پایمال کردی خاطر که یک لقمه به دست بیادی و من کسیه به رجل مسلم حالا میخواد غذا باشه میخواد لباس باشه خواهی لباسی بگیری بخواد بخواد بخاطر رسیدن به یک لباسی پا رو سر یک مسرمانی بذاری غیبتش بکنیم بیای از باب تملق پیش یک کسی بدگویش بکنی فا اینالله عز و یک من جهنم لباسش جهنمیه از آتش جهنمه پوششش الله ما را پناه بده از عذاب جهنمش و من قام به رجل مسلم مقام ریاین و سمعه من قام به رجل مسلم مقام ریاین و سمعه دو توجه داره وجه اول این که یک شخص بیاد گذافه گویی بکنه غلوب بکنه برای این که یک اعتقادی در شخصی بساده نزده مردم این ولی اگر بدونی چه کرامت داشت روی دیوار می نشست اون دیوار مثل اصم می تازید این ولی روی جانمازش می نشست میرفت. حجش انجام میداد فلانی تو حج بود برکه گجب بله میگه اون او اینکه من تو حج دیدمش دروغ دروغ مثل اون حضرمی صوفی میگه که تو خواب دیدم رسول الله صلی الله تو خواب و معمود بعد گفت این کتاب غزالی اخی علوم دی می بیننی می بینی گفت بله گفت اینو بگیر از این صحتر یه کتابی نیست بدون. کتاب پر از حادث دروغه کتاب غزالی میگه در کتاب باز کرد گفت بخون نکن؟ این کتاب؟ وله آخر صال. رسول الله صلی الله علیه و آله خوندن بلد بود که کتاب حیاء علم الدین رو بخونه بعد تصحیح و تضییفش بکنه بگه این احادیسش صحیح بخون میگن دروغو کم حافظه است رسول الله صلی الله علیه و آله خوندن بلد نبود کتابش باز میکنه این کتاب بخونه حدیث صحیح ها این حدیث این کتاب صحیح ترین کتاب بعد از قرآن شخدار دروغ میگه و واقع حالم همینه چرا زیلعی و امثالش اومدن این کتاب هایی که شهرت یافتن نزد مردم با این دروغ صوفیان ومندن تخریجش کردن اومدن احادیس دروغش رو در آوردن چرا تا مردم بر حذر باشن طرف حسابشون روز قیامت رسول الله صلی الله علیه و آله نباشه من رو عن انی حدیثا یرا انه کذب هو احد الکاذبین نکته اون دروغگو در جهنمه بلکه کسی حدیث را از رسول نق بکنه که دروغ باشه یک از دروغیانه دروغی اولی کسی که این حدیث را گفته و دروغوی دوم توی که این حدیث را داری به مردم نقل می‌کنی بعد رسول الله صلی الله علیه و خواب این کتابی که حدیث دروغ توش هست تایید می‌کنه میگه صحیح‌ترین کتابه دروغه هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و بر دروغ نمیشه بودن کسانی که اومدن خرافات سرایی کردن برای ایجاد غلوب به خاطر ایجاد اعتقاد در مردم نسبت به اون شخص اون فرد و پیش خودمونم رست بود قدیما سیدا این کارو میکردن تعویذ نیست نه سیدیا اون سادات تعویذ نیست برای خودشون کرامات قائل میشدن برای خودشون صوفی بودن تکسب میکردن از همین راه حالا یا گاهی با بحانه فاتح خونده شب جمعه تو و مرغی براشون بیارن، هاردی براشون بیارن کسب و کاسبیشون اصلا بود آترها صادر نبودن و دیگه هم بودن یاد میگیرن از هم دیگه اینها چیه مقام مقام ریاه هست مقام سمعه هست شخص يعني حالت دوم اینکه شخص بیاد برای تاجری، خود نمایی بیکن نسبت به خودش یعنی بیاد تظاهر بکنه من کرامات دارم من اون شب اینطوری این شد اونطوری شد بعضی ها می اومدن خراف سرایی میکردن برای خودشون اونجا قسمت اول داشتیم برای کسی کتابی مثلا مثال زدم جای خراف سرایی شده برای شخص میکرده برای خودش مثلا شخص می اومده مثلا میگه برزنجی میدونید برزنجی در واسه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من تو خواب دیدم که اون مجلسی که نشسته بودم برزنجی می‌خوندم رسول الله صلی الله اومد تو خواب سرمو بوسید که تو اومدی بهترین کارو کردی و اونم خوندن این کتاب دروغ میگه رسول الله صلی علیه و تو کدوم حدیث اومده که سر اصحاب صحابی رو کسی رو ببوسه که دیگه بیاد سر تو دومی رو ببوسه دروغ میگی چیزی ما در رفتار رس... رسول الله صلی علیه و آله به عنوان سر دروغه داره دروغ میگه به خاطر چی به خاطر اینکه مردم درش اعتقاد پیدا بکنه و در اون فعل ناشایست در... یا در اون... اون چیز اون کتاب اعتقاد داشته باشن اینا بعد از هم بترس این مقام ریا هست و سمعه هست یعنی تو داری با این خودنمایی چه نسبت به خودت چه نسبت به دیگران خب پیامبر دیدی خب بعدش خواب پیامبر چه دلالت میده دلیل بر اینه که تو اولیایی دلیل بر این میده که تو معصومی خواب درست و راست دیدن دلیل بر این نیست که تو آدم خوبی پادشاه مز بر وسنیت خواب میبینه خوابش هم الهام الهیه و صحیح هم هست و یوسف هم علیه السلام مکلف میشه به تعبیرش آیا چون خواب درستی دیده دلیل بر این آدم خوبیه؟ خواب خوب دیدن دلیل بر خوب بودن نیست. این خواب ها شده برای خیلی از صوفی ها برای این مقام، مقام ریاکاری و مقام خودنمایی بر حذر باش. اگر کسی بلند شد، برای کسی جلو و شکوهی ایجاد کرد، اومد تظاهر کرد به دینداریش و کراماتش مثلا، فان فَا الله يقوم به مقام ریا و سمع يوم القيامه الله روز قیامت رسواهش میکنه آبروش رو میبره روز قیامت رسوا میشه این دروغو بود این میخواست شما رو گمراه بکنه هر کسی هر کسی که بخواد دینش رو ابزاری برای کاسبی قرار بده روز قیامت محاسبه میشه یعنی چی دینش رو مقام کاسبی قرار بده جایی ملابازی میشه درامتزایی ملابازیه همه به عنوان جنگیری این یک بلنگو سپیکر اینجا گذاشته این یکی یه شکر دستیشه این یکی نمیدونم آب نمک یا نمیدونم یک میله آهنی دسته که جنازش ازش میترسن نه بدتر از همه این شیشه اصل پنجه هزار دمانی میخره یک میتونم میفروشه به عنوان جنگیر میدونی این اصل شفاست رسول الله صلی گفته عسل شفاست. اگر تو چیز شفا باشه تو عسله. تو حدیث اومد شفاست. تو هم جن داری و شفای تو جن زده چیه این عسل؟ من عسل اصلی درامسکور رفیق دارم اسکو برام میاره. دروغ میگه. این داره کاسبی رو میندازه. داره کسب میکنه با چی؟ با حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث صحیحه. کلمه حق. اريد بها باطل. قصدش سيارته. قسش پول در این فعلش چیه؟ فعلش حرام. دینش و اون حدیثی که برداده ابزاری قرار داده برای چی؟ کسب و کاسیوی پول دروردن جایی ملاست دعوتگره الله آدم یعنی نراحت میشه غمگین میشه بعض شهرها میره کنگ جاید رفتید دیده باشید این مسجد این وره این مسجد بینشون یک کوچه مثلا ده همتری پونزه همت بینشون فاصله. هست تو لنگم همینطور بعض از مساجد تعطیل هست کسی توش یا بعضی جاها مسجد خارج از شهر ساختن، هیچکس هم نیست. طرف چیه؟ طرف پیمون کاره. ملاس پیمون کاره ولی شیخ پیمون کاره. پیش اون تاجر، تاجر هم اینجا نیست که تو کشوری خلیجیه فلانجا مردم مسجد ندارن، نمیدونم اهل نمازن و دین دارن. میدونی چقدر سبب پایتو نوشته میشه؟ اگر اونجا مسجد زده بشه، اونجا مردمانش اینتریان، خیلی اهل و دین دوستن میاد تو ما ردیف میکنه براش. اون دین را ابزار قرار میده برای چی برای اینکه پول ساخت یک مسجد رو از اون تاجر بگیره یک مسجدی را بسازه اون 20 درصد یا 30 درصد مزد کارموزی یا اون چی بهش میگن اون پیمانکاریش را از اون پول بگیره و کسب درآمد بکنه این شیخ شده چی اون علمش درآمدزایی که با اون علمش کسب درآمد میکنه پیمانکاری بکنه علمش شده ابزاری برای چی پول جمع کردن دست و جیب اینو کردن جیب زدن. جیب جیبوری جدا دارم میگم خدا راه بکنه یعنی حالا نمیگم که آدم سوهزن داشته باشه ولی خب میگم جایی چون این مقام ریا و سمعه هست شخصی خودشو خوب جلوه میده خودشو اهل دین و صلاح قرار میده از این دینش سوء استفاده میکنه بهره برداری چی میکنه بهره برداری برای دنیای خودش میکنه هدفش آخرت نیست هدفش دنیاست این در روز قیامت رسوا میشه انسان باید نیت خودش رو اصلاح بکنه بله قال المؤلف رحمه الله باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يَأْخُذُ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا فَإِذَا أَخَذَ أحدكم عَصَى صاحبه فليردها إِلَيْهِ سد باب عزب واب صحیح ادم مفرد گفته ایمان بخاری رحمه الله و فسيح و جناته باب لا يجوز من اللعب والمزاح بعض از بازی ها و شوخی های که درست نیست صدا 80مین حدیث حدیث عبدالله بن صائب از پدرش از پدر بزرگش یزید بن سعید که میگوید شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ابزاری وسیله ای از دوست و رفیقت نشوخی اونا جدی نگیر قایمش نکو جدی برداشتی که میشه دوزی مبالشه برداشتی بهش هم نمیگی خب تو دوزی دی دیگه شوخی که نمیکنی باش برداشتی بهش نمیری این دوزیه یا جای شوخیه بر می‌داری طرف من کار داره و تو هم سر کارش گذاشتی صابش خورد میشه ناراحت میشه جدا دارم میگم بعضی از شوخی‌هاش ها دست سبب مرگم بشه بعضی از همه شوخی ها طرف فشارش میره بالا نمیدونم عصبانی میشه و از کور بیرون میره. بعضی از شوخی‌ها ها که دیگه حرامه شوخیهایی که با دسته دست طرف خرد کرده به خاطریه شوخی با پرت کردن چیزی حرامه. حالا شوخی با گفتار، یا با یک قایم کردن اینقدر شر از سخت گرفته نهی داره میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله لا یاخذ احدكم راین ضرری به جان تنش وارد نکرده اگر ضرر وارد به جان تنش شد چی اونجا برده هست روز قیامت یقه صاحبشو میگیره ولی خب این آزاده اون یک اجازه در شریعت به کتک زدن و ادب کردنش هست ولی این اجازه نیست به ادب کردن و کتک زدنش تو با این شوخی داری آسیب میرسونی ضرر میرسونی به برادرت لازم نیست که ضرر مادی باشه همون خشمی که به خودش میگیره همون ناراحتی که بهش دست میده کافیه تو بهش غصه دادی غم دادی فإذا اخذ احدكم عصا صاحبه نوچی سرین چیزی که مادین اساس تکی چوبی بیشتر نیست یکی چوب دوست رفیقشو برداشت فليردوها الیه برش بگردونه چوب آه. این چوب همه جا پیدا میشه حقیقترن چیزی رو در رسول الله صلی الله علیه و مثال میزنه حق شوخی کردن با مال کسی نداری با جان کسی نداری حق شوخی کردن با جان مردم مال مردم آورو حسیت مردم جایی هست از باب شوخی و مزاح یک شخصیتی را تخریب می کنی. ها من با شیخ فلانی بودم رفتیم سوار قطار شدیم او این شیخ یه دختر اومد کنارش نشست حالا میخواد خواد جمع به این شیخ هم چپ چپ داره زیر چشمی داشت نگاهش بودم. هدفش به خندودن جمعه لبخند زدن و شوخی کردنه ولی یک شخصیتی داره تخریب میشه یک شخصیتی داره خورد میشه این جنایته این جرمه این جرمه. این شوخی نیست اینجا هست که انسان حذر باشه در شوخی کردنهاش معاذب رفتارش و تعاملش باشه باید بعدی قال المؤلف رحمه الله باب الدال علی الخير حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فحملني قال لا أجد ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك فأته فحمله فأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله سداشی من باب عزبابة صحيحه ده مفرد امام بخاری رحمه الله گفتاش باب الدله على الخير کسی که ك... کسی رو ارشاد بکنه به خوبی به خیر منیکی حدیث ابو مسعود انصاری را میاره که اد ابو مسعود انصاری رضی الله عنه میگه یجا رجلن الى النبي صلى الله عليه وسلم فردی مردی و نظر رسول الله صلی الله علیه و وسلم فقال اني ابدع بي فحملني هیون مرخصه شده ناتوان شده کند شده ابدع معمولا در مقابل قالا خستگی حیوان گفته میشه وقتی حیوان کن میشه حالا اینجا شاید مقصود خودش هم باشه تو مسیر خسته شده اومده تو این راه خسته شده عبد فحملی فهملی پس من رو با خودت هم کن این وجیه یعنی که اونجا این فرد تو مسیر تو سفره خودش رنجیده شده خسته شده یا خسته شده و نمیتونه راه بره از رسول الله اصلا تقاضا میکنه که روی شوترش او را هم بکنه قالا لا اجد من جو ندونم که سوار تعارف نداشته باش چیزی که تواند نمیرسه بگو نمیتونم نمیرسم نگفتن در اون جایی که باید باشه زش نیست اب نیست چون بعضی جاهاست انسان خودش مکلف میکنه به یه چیز تعارف گیر میکنه حق خانوادش و خودشم پایمال میکنه تعارف نداشته باش اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم به این صحابی میگه من نمیتونم حملت کنم ولکن اعتف فلانا فلعل هو برو پیش شاید بتونه حملت بکنه لعله شاید شاید بتونه تو رو هم بکنه نی ریون شطور با خودش تو را هم بکنه بیاره با خودش تو مسیر فاتهو فحمله اون صحابی میره نزد اون فردی که رسول الله گفته بود رفت او بو را میکنه میگه فتنبی ص ص فاخبره فقال و من نظر رسول الله ص بعدش خبر دادن که جا داده بهش سوارش کرده بعد میگه من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله من دل علی خیر کسی که دلالت بده ارشاد بکنه کسی را به امر نیکی خیری فلهو مثل اجر فعله اجر اون کسی که اون کار را انجام داده را میبره یعنی اون کسی که الان اون سوار اون شتر کرده مثل اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله رو خودش کرده چون رسول الله صلی الله علیه و سبب این شده که این شخص یک سواری را گیر بیاره که سوار بشه اصل اینجا در کلمه ابداع ابدع در لغت عربی معمولا نه که معمولا اصل اینه که برای حیوان به کار برده میشه که کند شده تو مسیر را خسته شده، اذیت شده. این شخص حیوانش خسته شده، تقاضا داره که رسول الله صلی الله علیه و آله رو خودش رو بکنه. رسول الله صلی الله علیه و آله نمیتونه، میگه که برو پیش فلانی خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و او را ارشاد کرد در یک امر دنیوی. از باب اولا اگر کسی را در امر اخروی هدایت کردی، هدایت داری، ارشادش کردی، ثواب خیر هدایتش رو خواهی داشت. ان دل علی خیر مثلا گفتیم سوره ای رو کسی یاد دادی یا نوار عالمی دعوتگری که میدون اهل صلاح و دین انحرافی درش نیست به کسی دادی که گوش بده تو عجر اون دعوتگر رو داری تو اجر اون دعوتگر یک دعوتگریه تو نوار اون صدای اون رو میدی که میگه این درسی از دروس ازش بهره ببرد تو انگار اون دعوتگری من دل عل خیر تو دل بر این فعل خیری همشینی گفتم در تعلیم قرآن و ما الى خب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب العفو والصفح عن الناس حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجئ بها فقيل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 77 باب از باب صحیح ادام فرد باب و والصفح عن الناس عفو گذشت صفح صفحه جدیده یعنی براش یک صفحه جدیده باز بکنی گذشت بکنی و انگار که بین تو او چیزی نبوده حدیث 182 حدیث انس رضی الله عنه میگه که زن یهودی گزی را مسموم میکنه میاره برای رسول الله صلی الله عليه و وسلم میپزه خوشمزه پخته شده پذیرایی میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم و میدونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه رو رد نمیکنه پذیرایی کسی رو رد نمیکنه دعوت کسی رو رد نمیکنه فااکل منها رسول الله صلی اللہ علیه و سلم میخوره حالا حدیثش که طولانی تر از اینه رسول از اون بزه پخته شده میخوره بعد خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه میگه که این بوزه داره به من میگه که من مسمومم پخته شده اولی داره خبر میده حرف میزنه میخوره از باب اینکه اصحاب بدونن که پیغمبر اینها هم بخان ماکرونی رنگی بکنن که او را بکشن با سمی رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی میره نگاه کنین منم می این معجزه هست این اثبات نبوته این اثبات مقامه هرچند که رسول الله صلی الله علیه و سلم رنجیده شدن در آخر حیاتش میگه آثار اون سم و دردش رو درم احساس میکنم خود انس هم میگه که میگه میگه که تو عارف غفیل هواتی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم که حرف میزد میگه می دیدم یعنی اون آثار اون, اون سم در حلق و در گلوی رسول الله صلی الله علیه و سلم. واضح بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مقامش بزرگ گوسفند مسموم شده بهش میدن. یهودی رو میارن میگن سرش رو بزنید میگه نه ببخشید. رسول الله صلی الله علیه و سلام مشرکین جا میشن در احود با نیزه میزنن. اثر شکاف برمی داره. صلح حدیبیه میشه و بعد از اون فتح مکه میشه. گذرش میکنه. رسول الله اصلا 13 سال شکنجه میشه. از ابو جهل و امثالش اینقدر شکنجه دید. بازم وقتی که میاد فتح مکه میشی همشون عفو میکنه. چه دلی داشت، چه قلبی داشت. نسبت به یهودی، نسبت به مشرک، خب وقتی که این پیغمبرمون ای آینه هست. الگو هست. از مشرکش و از یهودی که قص قتلش رو داره، گذش میکنه. منو تو چرا از برادر مسلمان خودمون گذشت نمیکنین؟ چرا نمیبخشی؟ چرا صفحه جدیدی براش باز چرا اون کینه و قدرت همچنان هست چرا اون بغض چرا یاد نمیگیری میلاد الگوت رسول الله صلی الله علیه و نیست لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه برای شما در پیانبرتون الگو این شما اینطوری شکنجه شدید سم بهتون داد برادرت قص قتلتون داشته اینطور سریح واضح یاد بگیر اگر رسول الله صلی الله علیه شریف مقامش یادش نامش به خاطر این بخششه من تواضع علی الله رفع لذلك إن عزيز تتطور لما بقاتل ان قزشت وعفش إن بخششات إنسان عزيز میکنة إنسان محبوب دلها میکنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوب دلهاست محبوب قلبهاست جانمون وتنمون فدئي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانه بحمدك وصلى الله على محمد وعلى غالي محمد